لم ولم تسر السيف خدلانا ولم جبين بسم الله الرحمن الرحيم تمام حمد ثناء وصفات بخداوند يكتو بهمتا درود صلوات فروان بالرسول الله صلى الله عليه وسلم برادران مهاجر و مجاهد السلام و علیکم و رحمت الله و برکاته به برنامه امروزی ما خوش آمدید خداوند زلجلال را سپاسگزاریم که با ما فرصت داد تا یک بار دیگر از طریق رادیویی صدای جندالله به خدمت دوستان عزیز قرار بگیریم امروز جمعه تاریخ 28 جمادی الاول اول مطابق 20 اپریل حرکت اسلامی ازبکستان رادوی صدای جندالله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 در بخش نظام اسلام موضوعی را اختیار نموده ایم زیر عنوان نظام اجتماعی اسلام و همین طور در بخش تحولات یک هفته شما را از گزارشات مسرد آمیز خبر می دهیم با جنداله باشید یمید بین بنات الحسن نشوانا هذا الَّذِي كَانَ يَرْجُوهُ وَيَنْشُدُهُ فَنَا لَهُ وَحَبَاهُ اللَّهُ رِضْوَانَا فَعَادَ يَهْتَزُ فِي عَطْفَيْهِ مُحْتَلِقًا سلسله اندرس ها دانایی در پرسیدن است حسود جزبا مرک نمی آساید بمیر تا برهی ای حسود که این رنجی است که از مشقت آن جزبا مرک نمی آساید احسان کردن از افضل عبادات است مردن بهتر از مردم آزاری است به چی کار آیدت جهان داری مردنت به که مردم آزاری بهرمندی با زحمت و خطر به دست می آید سلامتی در ترک ریاست است دین را به دنیا مفروش حق گو باش و از ناسواب پرهیز. به نطق آدمی بهتر است از دواب دواب از تو بهگر نگوی سواب شفاعت پیامبر به آدم بیدی نمی رسد پیامبر کسی را شفاعتگر است که بر جاده شرع پیامبر است ارزیابی سخن قبل از ادا کردن تانیک ندانی که سخن عین سواب است باید که بگپتن دهن از هم نگو شایی خوب شنواندگانی عزیز این بود های امروزی خدا کند که از اندرس هایی که به خدمت شما تقدیم نمودیم نیک برده باشید. شنواندگان عزیز در این بخش از پروگرام توجه شما را به شنیدن سلسله دروسی مفتی ابوذر زرعظام جلب می داریم انقلاب اسلامی به طریقه دموکراسی نمی‌آید. چرا که طریقه دموکراسی اکثریت را می‌خواهد، خواهد لیکن انقلاب اسلامی اکثریت را کار ندارد اگر دو کسان بخیزد زید دو هزار و میلیون آدم ها بخیزه به قدرتش با قوتش، به حیلا و چیز خوشیاریش مکمل و وطن را بگیره و شریعت را تطبیق کنه و زندباده است فقط دو کس باشدم دو ست کس باشدم دو هزار کس باشدم امروزی مخلوقاتی میگه نمی احمقای دیموکراتار بگه کسی نیست قدش میگه دو فیصد مردم هستم مجای داقت برای ما چی قمه است دو فیصد هست ی یک فیصد هست همی دو فیصد را خود مقابله کردن نتوانستسته گروه صد فیصد باشد باشد چی الحمدلله ما دو فیصد مردم هستیم در خانهش در ومده فیدایی کرده هستیم بانو کرده او را کوشتیم الحمدلله در کویتا همو کسی که چیچنیا را شعید کرد او را فیدایی کردن. در کراچی فیدایی شد همی دو فیصد مردم شما را در بدر کرده هستن حرام کردن به شما خواب را. گری سو فیصد شود با چی میشه؟ لیکن مقصد امیه که ما با فیصدی کار نمیکنیم. ما برای حق کار میکنیم. حق پرس هستیم. بر حق هستیم. بر حق که هستیم عدد را نگاه نمیکنیم. ما زیاد هستیم کم هستیم نه. گروه ها زیاد میباشن چی غم است او زیاد میباشن خوب است که اصراف نمیشه مکارتوس مرمی ما. زدن میگیری کجای باشه؟ یک برادر ما بودمی عباس منصور که شهید شد رحمه الله می گفت که قارس امروز رفتم در جنگ زدم زدم لیکن فکر کردم که اصراف شد با اب گفت که نه اصراف نمیشه در جنگ خود چیزه هست و ثواب داره. لگید یا نلگید اجرش هست با خودش میگه که انشاءالله در چین میرم چین در بازارش میزنیم یک شم اصراف نمیشه اینکه مردم زیاد هستم پیکاکتی میشینه کرد میزنی. هم الله اکبر میگه یک شم اسراف نمیشه اگر چوه اسراف نس ای گاپس نه کی او اسراف اسراف اسمعنی نه لگی دمی معنی شس وگن اجر خو هست یا حدیث میات که کسی که یک مرمی مر میزنه او لگی دی نه لگی دن نشان رسید دی نه رسید اجر یک غلام آزاد کردن را میگیرد و می وقت تعلیم د وقت جنگ اس پروانه کنه زدان بگیر Tämä mahdollisuus ei synny. Jotkut eivät nauti, jotkut muut eivät nauti. Mitä teet? Mutta jos teet زه بگیر، الله مالک ده، یک کار میشه انشاءالله گر, گر نخورد میگرزه، برادره را غم نمیته، یه هم کلانگه ممکن شما اعتراض میکنید اینجا که حاکمیت خدا نیست گفته هستین شما حالا که مردم گر بگین که شراب خانه بند شود، زینا خانه بند شود، لچه خانه، ای دیگر لپر خانه بند شود بند میکنه حکومت، سوال رفع مردم megeen ke madrasa joudut savat, jomian joudut savat, itur hukumat? Mege rah. Lekin niin jää yksi nuhttaas. Nuhttaaminas, ke halq haram ja ne. Pesha talabkardane ja häs. با چرا بدون مطالبهی خلق او را بند نمی کند است که او فرمان الله تعالی را اعتبار نداره او طلب خلق را می بینه فقط اگر خلق که اینجا مسجد جور شود مسجد جور می شود اگر خلق که نه اینجا بادکاری جای بادکاری جور شود ب جای بادکاری جور می شود از چی معلوم شد؟ که برای خدا نبوده گی چیز برای خلق است یعنی حاکمیت خلق است اینجا حاکمیت الله نیست حاکمیت الله نباشه او کفر هست. دویم سوال سوال نیست بلکه تفصیلش هست در نظام دموکراسی اختیار قانونسازی به که هست؟ به پارلمان است د پارلمنت در پرلیمان همی خربوز ها کشستگی که همیقه کلانگلسالله دارن مثل چی؟ کچالو شکل دارن بعضش ریشم ندار هیچ چیز نفهمیده نمیشه یکی هست یهوده هست نفرانی است بعض خاله ها هم شستگی ه خاله اوباما اینجا هم در زردالو وزیر خارجه پاکستان یک دختر است ناقصات العقل و دین ای چی شدن؟ در پرلیمان شستن؟ برای یک میلیون خلق قانون جل میکنه همه فاسقه و فاجرا و زانیه و بدکرداره و دختر و ایش استگیره اونجا قانون جل میکنه یک مثالش چی در پاکستان؟ حقوق نسوا حقوق زنا نعوذ بلله در قانون نوشته شده گی که گر یک زن و مرد زن و مرد اگر بر رضا زینا کردگی باشن با او عقابت نیست با او جزا نیست میا بیوی راضی که گا قضی میگه میگه بیوی راضی هست چی میکنه قاضی بچارا در غم هستنه قاضی سبم نمیفهمه چی میکنم موزور میگه که بر رضا کردگی هست حجیب هست همگر بجه بر کردگی باشد سه سال چی بندی میشه بهیه موسس های کافی را خستن همین دخترا بدگرددار ها بعد وقتا خستن گفتگی زلممه سه سال بندی میشه باید کارش را دوام ببت چی سه سال بندی میشه؟ با پلیس اونجا دوام میتن به داخل بندیخانه کار رفتهن چکه میخوان همی کارا را میخوان که همینطور شود جسم فروشی قانونی شود او چان قانونی شود این بدکرداری قانونی شود رفتهست هم چیز قانونی رو در است. چرا که مردم میخوان همی روح ديموکراسياني نست؟ گر مردم بخواهند که یک کار بد جاری شود در ملک در ملت او جاری میشود. لیکن گر بخواهند که کار خیر جاری شود او بزرگ میشه یا میشه می نمیشه؟ ضرورت ضروری نیست. ممکن اسکول جور میکن ممکن hospitals شفاخانه جور میکن. لیکن در پارلمان شستامی مردم چی میکنن؟ قانون جور میکنن. برای ملت مسلمان برای امت مسلمان قانون جر میکنه حالا که الله تعالی قانون را جر کرده قانون را نازل کردگی است به ما شما قرآن است. لیکن این مردم با اون قرآن تسلیم نیستن حتی که همی جمعیتی ها که وقتی که کامیاب شدن موفق شدن در صبح سرحد باز رفتن در پارلمان امیر را پیش کردن تقدیم کردن که ما قانون صبح سرحد این میباشه نامش چی هست شریعت بل نه حسبه بل گفتن که شریعت امریکا یاردم بند می کند بیان دیگر نامانه منجا حسب بل حسب معنیش امر بل معروف است باور کنین شما همو کتاب کاغذهای که در دا داخلش قانون اسلامی نوشته شده گی بود قرآن نوشته شده گی بود حدیث ها نوشته شده گی بود زیر پای ماندن حقیقتا زیر پای مانده بالش استاد شدن در پارلیمان پاکستان شده گستی کارا باز گفتن که ما ایرا تسلیم نمیکنیم، گفته او را پارا پارا کردن. خود شما خودتون بگویین که تیری جونز که در امریکا قرآن را در دادگی است، او بدتر است یا بدتر هستند. کسان که قرآن را قانون را میبرند در پیش زردالو، او را میگوین که ما به این قرآن عمل کنیم یا نکنیم؟ تو عمل کردن به قرآن اجازت از زردالو؟ قجب چیز است؟ بسیار بیاده ادبی بسیار گستاخی بسیار توهین است اونجا اگر کاغزای قران را اوراق قرآن را در دادگی باشد سوزاندگی باشد اینجا خو احکام قرآن را پامل کرده است احکام قرآن را داد داده است احکام قرآن را پاره پاره کرده از این معلوم می برای ما شما که بد دموکراسی بر نظام دموکراسی اسلام نمی آید،, نمی آید نمی آید امکان نیست آیا امکان دارد که از باول اعتر جور شود؟ امکان دارد؟ با چطور امکان دارد که از اسلام درمی شود؟ امکانش نیست. پنجم امین است که در دین دموکراسی اعتبار عقیده و نظر و فکر و مذهب نیست. او اگر اعتبار میته، به قومیت بلیسانیت میته، لسانیت میته، با وطنیت با بازی که هست فرق فرق گروه گروه گروه او را اعتبار میتا. میگه که این نماینده شیعه است، این نماینده است این سنی است جدا جدا کردیا نکرد. ما خامی تور در نظام اسلامی. امی است که این نماینده مسلمان است، او شیعه است، کافر است، او زمی است، جزییاتی د، اویتور است، اویتور است. با؟ اینجا اینجا میتونیس؟ کافر هم در حکومت است، زمی هم در حکومت است، یهودی هم در حکومت است. باز نامش اسلامی، جمهوریه پاکستان است. اسلامی جمهوری افغانستان است در داخل حکومه شیام است سنیه هم است قادیانی هم از دیگر بدبخت مردم زیاد هستند. این نامش چی است؟ اسلامی جمهوری افغانستان است اسلامی جمهوری پاکستان است در نظام دموکراسی اعتبار عقیده و نظریه و مذهب چیز نیست بلکه چی است؟ اعتبار قوم اعتبار زبان Ehtivar vuotan, ehtivar tafrika, hirä ehtivardaa demiş. Halakkepä Ghambar sallallahu alaihi wasallamda hadis mi firmayat ki mandağıla aşcibiyen faleş minna. Keseki buqum parastid, davad mi kunadu azman nes, azumatı muslman nes. Vaman matağıla aşcibiyen faleş minna. Keseki bırai, buqum parastid mi muradu azman. Tekin da demokrasi, adi chizas. و نماینده اوزبکی سو نماینده تاجیکی سو نماینده بالوچی سو نماینده و نماینده فلانه چیه؟ این خمپارستیه سامچی. الله تعالی فرماید که این مل مل مومینونه اخوا، این میگن که نه این مل اوزبکیونه اخوا، این مل تاجیکیونه اخوا، این مل سندیونه اخوا، مل بالوچیونه اخوا. قرآن را مخالف است. الله تعالی به ایمان ما را رشت رشت ایمان ما را مستحکم کردنی نیست این ما رو میگن نه با قوم است این شما. همیشه هست یا نیست. بجهادنا سنفتت الصخره ونمزق الطاغوت والكفره بجهادنا سنفتت عزيز شما در و تعرف و تعرف نظام اسلام <تصفيق> <تصفيق> شنوندگانی عزیز رادیوی صدای جند الله در بخش نظام اسلام خوش آمدید البته در هفته های گذشته از نظام های اسلام، نظام اخلاق را به شما معرفی نموده بودیم در این هفته نظام دیگری از اسلام را به شما معرفی می‌نماییم. این نظام عبارت از نظام اجتماعی اسلام است خدا کند که از موضوع مورد بحث ما استفاده نیک نمایید نظام اجتماعی اسلام یکی از حقائق ثابتی که علام ابن خلدون در کتابش از آن یادآور شده این است تشکیل اجتماعی انسانی برای امرار معیشت هر انسانی امر ضروری و لازمی می باشد. این حقیقتی است که عده از آن به این تعبیر یاد آور شده اند که انسان طبیعتاً موجود مدنی و اجتماعی است. معنای سخن این است که موجودیت جامعه برای استمرار حیات بشری امر ضروری می باشد و واقعیت زندگی نیز بر آن مهر تایید میگذارد. زیرا، انسان در جامعه تولد می شود و در همان جا زندگی می کند و در همان جا می میرد. از آنجایی که موجودیت جامعه برای هر انسان ضروری و حتمی است، موجودیت نظام به هر نحوی که باشد، به برای تشکیل جامعه ضروری و حتمی می باشد. زیرا، وجود جامعه بدون قانون و نظام اصلا متصور نیست. و افراد نمی توانند بدون نظام و با آزادی کامل و مطلق در جامعه زندگی کنند لذا قوانین باید روابطشان را تنظیم نماید در غیر آن بسوی حلاکت و نابودی رفته و استراب همگیر می شود و جامعه انسانی به مجموعه از حیوانات مبدل می گردد چیزی که در جنگلات مشاهده می نماییم پس جامعه به نظام ضرورت دارد که مرزهای آزادی و مسئولیت های هر فرد را تعین نموده قوائد و زوابیت آمه را تضمین کند که تمام انسان ها در عمل خود به آنها پابند باشند تا بتوانند زندگی با همیشان را در سایه امن و استقرار ادامه دهند. گفتیم هر جامعه به ضرورت دارد اکنون باید بدانیم که هر نظامی از خود اساسات و اصول فکری و اعتقادی دارد که مورد pisan و گزینش جامعه بوده و نظامی را که به موجب آن سیر و حرکت خود را تنظیم می‌کنند روی همین اساسات و اصول فکری و اعتقادی ایجاد می‌نمایند. واضح است که صلاح و فساد این نظام در طبعیت از صلاح و فاسد اصول اعتقادی و بنیادهای فکری آن می باشد، زیرا فرق همیشه تابع اصل خود است. صلاح و فساد نظام اجتماعی که از اساسات فکری و اعتقادی آن الهام می گیرد، در شخصیت افراد آن جامعه انکاس یافته و آنها در تمام بخش های زندگی خود از آن متاثر می گردند. و پیامت های آن را متحمل شده یا به سعادت می رسند و یا هم دچار بدبختی و شقاوت می گردند. بنابراین، هر کسی که خیر خود و جامعه خود را می‌خواهد باید در جستجوی اساسات و بنیادهای فکری و اعتقادی صالحی باشد، که لازم است نظام اجتماعی روی آن استوار گردد و برای استحکام و تعمیق این اساسات در نظام جامعه بکشد. در این صورت است که راه‌های خیر و سعادت را در برابر افراد مانند خود میگشاید و بیشترین قدر ممکن های زندگی پاکیزه، آرام و پرسکون را برای افراد جامعه مهیا می‌سازد واقعیت این است که دین اسلام تکلیف بحث و پجوهش برای دریافت چنین اساساتی را از ما کفایت کرده است که باید نظام صالح و جامعه پاکیزه آن استوار گردد همچنان مشکل بحث و تحقیق پیرامون طبیعت و چگونگی و خصائص نظام صالح را حل نموده است و با تقدیم این تسهیلات ساختن جامعه صالح را سهل و آسان گردانیده است جامعه ای که سعادت افراد خود را تأمین و تضمین می کند پس لازم است بدانیم که تهداب و بنیاد نظام سالی اجتماعی از دیدگاه اسلام کدام ها اند و ویژگی های این نظام چی چیز های اند این دو سوالی است که ضمن دو مطلب به جواب آن می پردازیم مطلب اول اساس نظام اجتماعی اسلام اساس و بنیاد نظام اجتماعی در اسلام را عقیده اسلامی تشکیل می دهد، زیرا هر انسان مکلف است که این عقیده را داشته باشد تا جایگاه خود را در جریان زندگانی دنیا و رابطه خود با کائنات بداند و هدف را درک نماید که خاطر آن خلق شده است همین عقیده است که افکار، سلوک و سایر تصرفات انسان را توجیه می کند و انسان نمی تواند که در هیچ امری از حدود آن بیرون بماند چنانچه گفتیم انسان موجود اجتماعی است، لذا بدهی است که عقیده اسلام باید جهد دهنده ای او در ساختن جامعه اسلامی و نظامی باشد که برای سیر و حرکت جامعه انتخاب می کند. حقیقت این است که اسلام با تقدیم نمودن این اساس برای اقامه جامعه بشری، انقلاب عظیم و بیمانندی را در تاریخ بشری برای انداخت، و پدیده ای را ایجاد کرد که بشریت هیچ گونه معرفتی با آن نداشته و حتی در ذهنشان هم خطور نمی کرد. ما در تاریخ بشری می بینیم که روم، یونان، فارس و عرب قبل از اسلام جوامع خود را بر اساس نجات، قبیله، خانواده و اقلیم‌ها ساخته بودند و نظام‌های باطل را بر این اساس غلط ایجاد کرده بودند. که ظلم، تجاوز و پایمال شدن کرامت انسانی را به ارماغان آورده بود. ولی زمانی که اسلام آمد و عقیده را اساس و تهدا به ساختار جامعه قرار داد، در حقیقت چرخش خیلی اساسی و مهم را در حیات بشری ایجاد کرد و کرامت انسانی را تضمین و هر امری را در مکان مناسب آن قرار داد، زیرا برای انسان متمدن شایسته نیست که جامعه خود را برسم جاهلیت قبل از اسلام بر اساس رنگ، نجات و اقلیم بنیاد نهاد. چی؟ می‌دانیم که تمام بشریت اصل واحدی دارند و تنوعی نجات و قبایل نمی‌تواند این حقیقت را بپشاند. این نجات های مختلف و قبایل در حقیقت مانند شاخه‌های های که از یک اصل رویده اند. الله تعالی می‌فرماید. Yä, äyhaan naiset taku rabbkum, jodi kuluakum minenfesin waahida. Aiemmardum, btersid Asperberdiarutan, onki aafred shumara azjak nafsi waahid. Naisu kllhum bnu Adam, wa Adam kuluak min Mardum Hama farzandani Odamant ant, wa Adam ashaak aafreda shuda ast. همچنان قرار دادن اقلیم و سرزمین به حیث تهداب و اساس جامعه بشری به معنا می باشد زیرا الله تعالی زمین را برای تمام مردم آفریده است پس زمین خانه و وطن مشترک همه اینسان ها می باشد به همین گونه قبیله، نجات، خانواده و غیره هیچ کدام این صلاحیت را ندارند که بنیاد و اساسی برای تشکیل جامعه و ملت قرار گیرند زیرا با طبیعت و افق زیقی که دارند نمی توانند تمام بشریت را در دامان خود جای دهند. از سوی دیگر در مقدور هیچ کسی نیست که خود را به قبیله و نجات دیگری قرار دیهند اما هر کسی میتواند که عقیده اسلامی را پذیرفته و عضو جامعه اسلامی گردد و حتی اگر کسی از قبور عقیده اسلامی ابا می ورزد باس هم جامعه اسلامی او را از خود نمی راند. بلکه چنین شخصی می تواند جایگاه مناسبی در جامعه اسلامی داشته باشد به شرط اینکه و لای خود را با جامعه اسلامی اعلان کرده و تابعیت از نظام آن را از طریق بستن پیمان زیمه اعلان کند در این صورت افراد غیر مسلمان نیز جایگاه مطمئنی در چنین جامعه فکری داشته و از حقوق آمه و خصوصی و حمایت کامل جانی، مالی و آبرو برخوردار می گردند این واقعیت ها نشان می دهد که آنها از آن چینان حمایت و ریایتی در جامعه اسلامی برخوردار بودند که نظیر آن را در هیچ جامعه دیگری در رابطه با اقلیت های دینی آنجا یافتنه می توانید. شنوندگان محترم، این بود معلومات مختصر در مورد نظام اجتماعی اسلام. بقیه موضوع را در برنامه های بعدی ادامه می دهیم. با جندالله باشید. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تسمعن طالبا في الله يا لا تسمعن في اکنون نوبت به بخش اخیری برنامه امروزی ما رسید، البته در این بخش از تحولات داغ هبته، از قبیل خروج 800 زندانی از زندان شهر بنو توسط برادران مجاهید، عملیت های متوتر در اکثر نقاط افغانستان بشمولی کابل و غیره گزارشات شما را با خبر میسازیم. و اطلب مسعي يا رصاص رشاش ابي زمجر افغانستان پنجشنبه با 20 جمادي الاول مطابق دوازده اپریل در بندر خانابات ولایت کندوز يك عملیات استشادی در مقابل منزل عبدالله الله دار صورت گرفت که در نتیجه تن کشته به خودی عبدالله الله بویاک تنی دیگر جراحت برداشت. سمی قماندان کماندان ولایت کندز گفت یکی از محافظین کماندان واکنش ولایت کندز هدف اصلی این حمله بود. 22 جمعه اول مطابق 14 اپریل سلاح الدین ربانی پسر دین ربانی در روز مسکر به ارگ ریاست جمهوری با عنوان رئیس شورای عالی صلح معرفی شد. با تاریخ مسکر سخنگوی حکومت مرتد افغانستان میگوید جنگی که در ولوسوالی کامدیش ولایت نورستان در روز پنجشنبه صورت گرفته بود تا حال در این جنگ 29 کشته دیگر وزارت دفاع حکومت مرتد افغانستان ادعا دارد که در عملیات مشترک نیروهای خبیس ناتو و افغان 47 تن از مجاهدین به شهادت رسیدند که این عملیات در ولایت های کابل، نورستان، تخار، بدخشان، هلمند، زابل، رزگان، لوگر و پکتیا برای داشته شده بود. به تاریخ مذکور، مقامات ولایت کاپیسا میگویند که در نتیجه انفجار یک موین کنار جاده در شهر محمود راقی این ولایت 4 تن کشته شدند. احمدullah حمیدی سخنگوی قماندونی امنیای این ولایت گفت در این رویداد جناق قفیزی آمر حوزه دوم پلیس شهر محمود راقی با محافظش کشته شدند مجاهدین مسئولیت این عملیات را به عهده گرفتند 24 جمادی الاول مطابق 16 اپریل در نتیجه این یک ماین کنار جاده، حاشم خان حبیبی اولسوال بالامرغا به والیات بادغیس کشته شد. شرافیدین مجیدی سخنگوی والی بادغیس گفت حاشم خان حبیبی ابتدا در این این ماین زخم برداشت و بعد در شفخانه جان باخت. با تاریخی مسکر مقامات امنیتی ولایت کندهار میگویند که یک سرباز یوردی ملی میخواست که بر بالای مشاورین آمریکایی تیراندازی نماید از پادر آورده شد عبدالحمید وردا قماندون قلووردی 205 ولایت کندهار گفت این فرد قبل از اجرای حمله توسط مشاورین آمریکایی کشته شد 21 جمادی الاول مطابق 13 اپریل فاریاب بعد از شهادت برادر ما دو هفته پیش یک برادر نام قاری قیام الدین عمار که استاد یک دارالحفاظ بود 700 تن اشاگردان خود را در جنگ علیه سلیبی های متجاوز و همکاران مرتدشان ترغیب داد بعد از وقع این حادثه نیروهای آمریکایی از قضیه باخبر شده ویره در نتیجه عملیت شبانه به شهادت رساندن بعد از این حادثه مردم منطقه با قهر غذاب شان به تظاهرات پرداختند که در نتیجه سی تن آنان کشته و پینجا و مجروح گردیده و از ساکن اردوی ملی نیز سی تن کشته شدند. بیست و سی جماده لوالب مطابق پانزده اپریل. بنابرای گفته های زبیح الله مجاهد چار عملیات جداغانه در شهر کابل و سی عملیات در ولایت های دیگر افغانستان صورت گرفتند. در قدم اول مولای اقبال و اناس از لوگر و حافظ اسمت الله از غزنی و حنیف از پکتیا به رهبری مولای اقبال در پارلمان ویراعت کابل هجوم بردند بعد از آن 6 تن از مجاهدین دیگر هر یک قره عبدالرحمن از وردک، انجینیر سلمان و ملا شهاب از پکتیا ابراهیم از لنگرخور، ادریس از بلغ و خطاب از غزنی برهبری قاری عبدالرحمن در منطقه شیرپوری ولایت کابل منتظر عملیات بودند و گروپ سوم هر یک مولا مزمل از زابل و حافظ طلحا از کندوس و زین العابدین از پکتیا زندان را هدف قرار دادند. تمام گروپ در یک زمان مرکز آیصاف و سفارتخانه های آلمان، بریتانیا، خسر پارلمان و دارل و غیر مراکز نظامی را تحت هدفشان قرار داده بست ساعت مقاومت نمودند. ایشان در این عملیات از ماین ریموت کنترول، بمبهای دستی، از سلاح های آر پی جی، پیکا، کلاشونکوف و واسکت های استشهادی کار گرفتن. در این عملیات، نوید تن از دشمنان دین که متشکل از ساکر ناتو، اردو، پولیس و اشخاص دیپلماتیکی خارجی بودند کشته شده و ستها تن دیگر مجروحو کردیدن در همین روز در عملیات شهری جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار تن از مجاهدین اسلام هر یک محمد آمر، امیر حمزه، زیرار رحمت، محمود، آبید، معاص و مروه که باشندگان ولایت های خوست، لوگر، هیلمند، زابل، کندوز کندهور و وردک بودند اشتراک ورزیدند در مرحله اول 5 تن ایشان برهبری محمد عمر بر میدان هوایی شهر جلال و مرکزی پی آر ٹی هجوم برده 4 ساعت مقاومت کردند که در نتیجه 27 تن از ژاکیر ناتو و اردو ملی کوشته و 35 تن دیگر زخمی گردیدند با تاریخ مذکور در ولایت پکتیا 3 تن از برادران استشهادی هر یک امیر حماد از غزنی محمد طاهر از ننگر هار و قاری سیف رحمان از خوست عملیات نمودند که در نتیجه سی تن از دشمنان اسلام کشته و چندین تن دیگر مجروح گردیدند. با تاریخی مسکر در ولایت لوگر نیست 6 تن از فدایان اسلام عملیات استشهادی را به انداختن از این جمله ملا دلاور باشنده ولایت خوز بر ریاست تجارت ولایت لوگر عملیات استشهادی کرد و فدایان دیگر در مرکز پی آرتی عملیات استشهادی نمودند که در نتیجه آن 29 تن از ساکر اردی ملی کشته شدند. در میان کشته شدگان شش عسكري آمریکایی نیز وجود دارند. در تمام این عملیات فیدایان اسلام 42 ساعت مقاومت نمودند که در مجموع از دشمنان اسلام تقریبا 220 تن کشته و ستها دیگر زخم برداشتند. در مورد این حملات مرتد حامید کرزی در یک بیانیه خود گفت این همه نشاندهنده ضعفیت استخبارات دولت افغانستان می باشد که افراد استخبارات به وظیفه ایشان توجه نکردن جان الان نیز این حمله را دومی شکست بعد از حملات بر سفارتخانه های امریکا در اواخر سال گذشته میلادی دانست. پاکستان 22 جماعت الاول مطابق 14 اپریل پولیس می گوید مردان مسلح موتورسیکلت سوار در دو عملیت جداگانه در صوبه 8تن را کشتند. عبدالخالیق هزاره رئیس حزب دمکراتیک هزاره ها می گوید که این کشترها بعد از 24 ساعت صورت گرفت. که والی بلچستان گفته بود مقامات اقداماتی را به منظور جلوگیری از کشترهای فرقه هزاره ها روی دست خواهند گرفت. عبدالخالق گفت امروز هشت تن ما کشته شدند دیروز وقتی که با والی بلیچستان ملاقات کردیم او با من تعهد کرد که در این منطقه عملیت را خواهد انداخت او به حکمت ایالتی هم دستور داده بود که جلو کشترهای فرقه هزاره ها را بگیرد اما هنوز هیچ اقدامتی در این مورد صورت نگرفته و مردم هزاره با صورت هدف کشته می شوند. حمله اول در براوری رود صورت گرفت جایی که مردان مسلح بر موتر آتش شدند که شش از افراد اجتماعی ها را حمل میکرد. در این حمله همه این افراد کشته شدند و حادثه دیگر در سبزلرود رخ داد در این حادثه نیز یک مرد مربوط به همین اجتماع کشته شد حمله سوم در منطقه شالکوت رخ داد که در این حمله یک معمر پلیس در تیراندازی افراد مسلح کشته شد 23 جمادی الاول مطابق 15 اپریل در نتیجه یک عملیات هجومی مجاهدین حرکت اسلامی ازبکستان و تحریک طالبان پاکستان بالای یک زندان در شهر بنو در حدود 800 تن از زندانیان موجود رها گردیدند. نظر به گفته های منابع امنیتی حکومت مرتد پاکستان مجاهدین بالای زندان مرکزی ولوسوری بنوی ایالت خیبر پختونخوا با استفاده از پرتاب راکت و بمهای دستی حمله کرده و تمام بندیان موجود این زندان را فرار دادند. مرتض زاهد نواز یک تن از مسئولین زندان مسکر در یک تماس تلفنی با رسانه‌های کفره گفت در هنگام وقوع این حادثه بتدای 944 تن در این زندان موجود بود وای گفت که در بین این فرارکنندگان عدنان رشید نیز موجود است که به علت دست داشتن به نقشه قتل پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان از 8 سال بدین سو در زندان بسر برد مرتض زاهد نواز میگوید که همراه حملہ آوران اسلحه ثقیله وجود داشت و همراه ما این چنین سلاح وجود نداشت. داشت. مجاهدین با پرتاب راکت و بم‌های دستی داخل زندان شدند و ما نتوانستیم مانی آنها شویم و همچنان افزود در این رویداد 4 تن از افسران پلیس زخم برداشتند و گفت تعداد حمله‌واران در حدود 250 تن بود به سبب زیاد بودن تعداد حمله‌واران افسران پلیس نتوانستن مانع ورود آنها به تعمیر زندان شوند روسیه Bis the sea Jumadlawal Mutabic 11 day April, Dar Hudichar Hazatan Az Hameen Muhalifin, Dar Shara is a Han Russiat das Bata Zahrod Dawatizadan, and Hachimayat Shandra as it Savirzoiak Syasad Madhari Mahalli Igraskardan. In Siyasadmadar Miguelat, Aurai Dada Shudabah way dar in Tahabad Dusdi Shudas, Bahamin Dalil Way Dasba It Savir Zay Zadaast. به تاریخ یک فابرکه سی کمپلسازی در غرب هند منحدم گردیده و بیشتر از 250 نفر در زیر آن گیر مانده اند. مقامات هندی میگویند که علت انهدام این ساختمان یک انفجار بود ترکیه بیست جماد الاول مطابق دوازده اپریل در استانبول ترکیه حکومت آن شخصی را بنامه سی که هنرپیشه مشهور پیانو بود به علت اینکه دین اسلام را دشنام داده بود مورد تحقیق قرار داده و سه سال زندان محکوم کرد. الجزایر به تاریخ مسکر اولین رئیس جمهوری الجزائر بنامی احمد بن بیلا دو هفته قبل به سن 96 سالگی وفات کرد. لندن بستی اکی جماعت لوال مطابق 13 مارچ یک شخص بنامه مالکم گیل در داخل دانشگاه در لندن مکان را به منظور عبادت مسلمین و در امن بودن ایشان از شر شراب خوران تاهیه نمود. استرالیا 25 جمادی الاول مطابق 17 اپریل، حکومت استرالیا اعلان نموده است که تا نیرهایش افغانستان را ترک نمایند. این کشور در اصل خواهان خروج از افغانستان در سال 2014 بود، ولیکن ایشان میگویند اکنون وقتی آن است تا نیروهای آن کشور افغانستان را ترک نمایند، زیرا نیروهای افغان توان تامین امنیت کشور خود را دارند. حکومت آنکشور همچنان اضافه نمود که در مرحله اول 1550 اسکر افغانستان را ترخواهند کرد ولیکن بعضی از نظامیان برجسته آنکشور به منظور تعلیم دادن نیرهای افغان در افغانستان باقی خواهند ماند نظر به گفتهای حکومت آنکشور در مدت 12 سال 3 اسکر ایشان به قتل رسیده اند اشر بالخمره اه لنيل في ساح اقصى النبي اه لنيل شهاده في ساح اقصى النبي شنا منداكوني عزيز با همین طور رسیدیم با تا برنامه دیگر که در صورت بقای حیات باشم به شما قرار می گیریم همای شما را به خداوند ذوالجلال سر بلند با دوستانی دین سرنگون بود دشمنانی دین دشمنانی دین سر بلند با دوستانی دین سرنگون با دشمنانی دین, سر دین سر بلند با دوستانی دین سرنگون با دشمنانی دین ما بعدی آمی باستایم کمر گرسی لحیم آس نیز او تبر ترسی مازیتان از تیاران است داد حکم جان خالق قلب شاه سر بلند با دستانی دین سال نگون با دشمنان سر دلند با دوستان دین سال نگون با دشمنان دین راه ما یاری ما خدا راه نمای ما ذاتی کبریا راه ما حقاس یاری ما خدا راه نمایی ما ذات کبریان سر با دوستان دین سرنگون با دشمنان دین سر دیلند با دوستان دین سرنگون سر با دشمنان دین ای مجاهدین ای برادران ai khoda farast ai dilawarun kushishi fursati ghadast darsi bandagi waqti imtihan sar biland bar dostani din sanegon din سر نگون باد دشمنان دین در رهی خدا می کنیم جانی بی غذا می رویم چوباد محو می کنیم عاملی فساد خوف مرگ را می برم زیاد سر بی لند باد دوستانی دین Sarne gun go dushmanon din dushmanon sar diland ba dostan sarne gun go dushmanon din dushmanon sar diland ba dostan Sanigori go dushmanon din Sanigori go dushmanon din Sanigori go din